حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بر روز بهتر ولی که چون فلادی به خدیف چشم دل به با اش دل به مندی <تصفيق> که دل به سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا با پس فردا تجواه قلب درب سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا با پس فردا سلام به همه گی من فرشد منافی هستم اینجا رادیو پس فردای شماره 946 یک هفته دیگه یک رادیو پس فردای دیگه با شمایی خانم‌ها، دختر خانم‌ها و پسر‌ها طبق معمول شاعرمون اول هفته است و شعر سروده. ببینیم که شاعر رادیو پس فردا چه شعری سروده. ایشون سرودن که ادعی تبعیض در هر کار اندر میکنند. هر مساوی را به شکلی نابرابر میکنند. از برای کار در یک جامعه مثال مرد را پرباد و زن را جمله پنچر می کنند توی خانه بچه ها را مشت و تیپا میزنند، زنند تعتقاری را ولی حلوای برسر می کنند گرچه پنج انگشتکی هستند لیکن در عمل شست را ارجه به چار انگشت دیگر می کنند بمب بر خودگر ببندد یک جوان اهل ریاض ارزش پاسپورت ما چون چوغن در میکنند را چون یه راج افتاد ارزش پاسپورت ما را بزه یه بار دیگه میریم بمب بر خود مهمه چون میدونی بمب بر خودگر بمب بر خودگر ببندد یک بمب بر خودگر بندد یک جوان اهل ریاض ارزش پاسپورت ما را چون چقون میکنند. گر مهاجم اهل آنجا باشد و یانکی بود پشت چش نازک به سوی اهل خاور می‌کنند با تشکر شاعر تبعیض زدمون این هفته با توجه به حرف‌های عجیب غریب دونالد ترامپ یکی از علاقمندان پست ریاست جمهوری در آمریکا و این جو تبعیض‌آمیزی که تو برخی از کشورهای غربی علیه ماجرین خاورمیانه ای را افتاده و اینکه کلا حتی اگه تو های خودمون جامعه خودمون مدارس خودمون کلا هر جای خودمون خوب نگاه کنیم تبعیض داره قلق قلق قلق تبعیض رو در دستور کار قرار دادیم و قراره به این معذله جهانی بپردازیم و خواهشمون اینه که امشبم شما کمی تبعیض قائل بشین سر ساعت 9 شب به جای اخبار شبکی یک کوسریال های ترکی و نمیدونم فوتبال و هر برنامه دیگهی که دارین ما رو انتخاب کنیم بیاین سر قرار همیشگی تا با هم در مورد تبعیض حرف بزنیم قول میدیم این هفته ما هم تبعیز قائل بشین فقط فقط با شما باشیم برو بریم خانم آقای اون دختر خانم آقا بسرا در حالی که ما اینجا هنوز درگیر پاییز هستیم ظاهرن تو ایران تو خیلی از مناطق از زمستون هم شماها شما ها رد شدین رفتیم مرحله بعد با چقدر برف چقدر بارون دم آسمون گرد واقعا گوش کنید نظر یک دوتا از هموطنان رو در این باره بعد روز داشتیم گارو میکردیم برگاه رو و روز پارو میکردیم رو برپاره ترافیک چطوره؟ ترافیک افتداد خیلی دیار روزای زمستونیم و همیشه همینه دیگه بله دیگه اصلا تا دلش میخواد بیاد فقط خرابی و این حرفا بار نهاره هر چی میخواد بیاد ما مخالفتی نداریم که شما مخالفتی نداشته باشید چون میدونی اینا میره تو حلق زمین میشه منابع زیر بعد منابع روز ما خیلی غنی میشه مع خیلی سعی کردم مثلا علمی حرف بزنم ما. البته بعضی وقتا هم اینقدر برف و کولاک میشه مثلا این خبرنگار عزیز صداوسیما که رسما در باد میبرتش در حین زبط گزارش ببینید این شکلی میشه برف و کولاک شب گذشته نیروهای چارلوس سیلکو به حراز فرا گرفته علای که ساعت 11 صبح در محور هستیم و ببینید که چه کولاک شدیدی داره بله خیلی هم عالی البته مال این مال دو سه روز پیشه آماده باشید از فردا ظاهرا قرار دوباره ننه سرماینا حمله کنن دیگه خوب بپوشونین خودتون رو از سفرهای غیر ضروری هم پرهیز کنید اصلا اینجور جور مواقع بیشتر سفر های درونی بکنید ببشین تو خونه ببشین تو خونه تو... اه... تو خونه خودتون اصلا هی سفر کنید هم دور بزین تو محل خودتون هم نری هم تو خونه خودتون سفر کنید ببین چی پیدا می‌کنید بهتره به خدا حاشیه جان پنج باره بعدا بیایم احکامیم سر ما عجبا چیارو؟ همه بله به قراره با این گازشون گرونش کردنا پنج بارو بزن ضبطه بس میگی بزن ببینم آه ضبطه یک دو سم تو می کنیم یک دو سم تو می کنیم اینجا اصفهان است شهرستان مبارکه I love, you, I love you too We love you too دمتون گرم بله به هر حال ایشون گفتن مثل که این چیزی که ایشون گفتن دنبال چوب بودن خب این روزها ظاهرن شنیدیم که مشکل گاز هم دوباره پیش اومده و خیلی از هموطنانمون جاهای مختلف ایران به مشکل گاز برخوردن و دوباره برو دنبال کپسول گاز و کپسول گاز بیا و گازی و از این حرفا داریم امیدواریم این مشکل هم زودتر بر عزیزان آقایون خانمها خدا رو شکر این داعش خیلی گل بود هر روز داره به سبزه بیشتری هم آراسته میشه. الان خبر اومده که دایشیان همیشه در صحنه در زمینه چاپ و تکسیر گذرنامه سوریه‌ای غلابی همی دارن فعال و فعالتر میشن. حالا خاصیت این ها چیه؟ عرض میکنم اینه که الان تو بازار پناهندگی برای پناهنده شدن گذرنامه سوری رو خب بهترین گذرنامه است. یعنی چون هر شما برید من سوریه‌ای هستم و جنگ فرار کردم، سری بهت پناهندگی میدن. برادران دئاشی هم خب این گذرنامه های رو میفروشن به متقاضیان عزیز تا بتونن خب خرج به حال آقا این همه انفجار و ترور و بترکون و بمب و تفسخ و فجور و اینا رو بعد حمر بعد عیج در میارن دیگه خرج اینا رو اما استفاده خطرناک ترش اینه که عزیزان دئاشی در قالب پناهجو بله در قالب پناهجو با پاسپورت سوریه ای بیان برن وسط آمریکا و اروپا و دوباره هیچی دیگه هی هزار تا دردسر و اینا یعنی این داعش بلای سرمون آورده آدم فکر میکنه واقعا هممون الان داریم تو فیلم سینمایی بازی میکنیم اینا هم همش قصه است کاش اینجوری بود به خدا یه حالا از آو بوزه میذوشن ما که از آو که سر از آو گاومون هم به زور بخان بگیریم یه فنجون میتونیم شیر بگیریم آها چی بگم خدایا فرشی جان مطمئنی شیر بود اصلا یه وقت به خانوم بوزه برنپاره بخاطر اینکه بود خانوم بوزه بوده که شیر میداد نه آو هم ها بله ما مخصوصا تو برنامه به هر حال از این چیزا میگنجونیم که بفهمیم شما هواسون هست یا نه دیگه من قبلا هم گفتم خوش اومد نه خواسن اومد اونایی هم که متوجه نشودن چون ما شنبه مثل که دوشنبه بود یا شنبه یادم نمیاد دقیقا یادم نیست که چه اتفاقی افتاد ولی از آقا بوزه ما شیر دوشیدیم حالا یه جایی گفتیم که آقا بوزه میری شیر آقا بوزه رو میدوشی بعد اینو گذاشته بودیم این مخصوصاً بفهمیم حواستون هست یا نه دیگه اینایی که havasشون نیست اینا همش وسط برنامه سرشون تو موبایل و تبلت و نمیدونم همش این ور دیگه لپتاب رو نمیدونم آقا بزاخ شیر میده؟ چقدر میدقتین شما؟ واقعا من نمی متوجه اشتباه عمدی ما تو برنامه نشدین؟ از دوستانی که حواستشون جمع بود من تشکر میکنم ممنونیم به زودی به قید غر از در درمیه دیگه بگین دیگه چه خبر ها خوبین همه چی ردیفه خوش میگذره البته الان که من میدونم حال و احوال اونایی که ایرانن تعریفی نداره ها هر کی گوشه نشسته زانوی غم بغل کرده چرا چون فردا باید باز بر سر کار بعد تعطیلات تموم شده دیگه حالا سه روز تعطیلی خوش گذشت چون پنج که تعطیل بود امروز هم که شنبه تعطیل بود دیگه این سه روز خیلی خیلیه یه روز قبل یه روز بعدش هم به زدن تنگش و عشق و حال دیگه آقا زندگی همینه دیگه همینه تعطیلات میان میرن اون چیزی که میمونه همیشه هست آدم ازش خلاصی نداره کاره یادتونه ما دو هفته تعطیلی داشتیم دو هفته تعطیلی ما همین چند وقت پیش عین برق و باد تموم شد. دیگه سه روز تعطیلی چی نیست که. حالا فکر خودتون خراب نکنین، قشنگ ریلکس کنین، اجازه بدین. بدنتون از تهمانده های این تعطیلات لذت ببره الان شهرام براتون یه موسیقی ریلکسیشن آفرین آره برو یه چیزی بچه های کم ریلکس کن استرس دارن فردا میخوان برن سر کار استرس ازشون دورش ریلکس کنیم لیلکس لیلکس لیلکس خیلی لیلکس باشه نانو چرا جیجیت میکنه راحت شدیم لیلکس. لیلکس این الان بسته دیگه شهرام جان بسته دیگه این خوابیدن اینا نخوابین بابا پاشین خوابشون برد آقا اینقدر ریلکس کردین دیگه نخوابین دیگه همینجوری که با برنامه ما میخوابین دیگه من همین هم بدیم دیگه این هم پخش کنیم اینجوری دیگه هیچ چی دیگه میخوایم الان بریم سراغ موضوع این هفته البته موضوع رو که گفتم پاشین دیگه آقا پاشی پاشی کار داریم این هفته گفتم به خاطر این حرفای جدید آقای ترامپ که خب بهش اشاره کردم اول برنامه و البته از اونجا که بحث مصوبه کنگره آمریکا در مورد ایرانی‌ها این روزا داغه و خیلی از ایرانی‌هایی که دو تا تابعیت دارن به خاطر این مصوبه نمیتونن با پاسپورت دومشون دیگه بدون ویزا به آمریکا سفر کنن ما برای همین موضوع تبعیز رو برای این هفته انتخاب کردیم و میخوایم این مشکل هم به امید و خدا ریشه کن که خب نمیتونیم بکنیم لاقب ریشه یابی کنیم دیگه اینه که امروز همین اول برنامه یک سلام مخصوص ارز می کنیم خدمت همه نمایندگان محترم کنگره که به این طرح رأی مثبت دادن و البته خب فارسی بلد نیستن که اینا من ناچارم انگلیسی سلام کنم بفهمن دیگه هلو هاواریو آر یو می کنم به شما کنگرس من ها و کنگرس ومن های عزیز و میخواستم بپرسم شما چرا یعنی وای انقدر رأی گنده گنده یعنی بیگ ووت داد به این تر واقعا چه این خوبه انگلیسی میتونی میفهمن واقعا چرا یعنی وای وای آقا وای ای او مای گاد آقا وای یعنی چرا از این تر وای حالا وای Why, why, آشقی و عشقیه و وای کدومه رفت محبت Why? دم شده آدم کجا رفی کجای دوست کجای همدر گلی تو دنیا بیرانه میشه گل رفته خار اومده بهار چی میشه در آخوش پا من رفتم از یاد سکوت این قلب شکستم شده فریاد آره وای وای سلام پرچی جام بابک که هستم از استرالیا شهر زیبای بیریزبین خواستم از شما همکاره عزیز تشکر کنم بابت برنامه خوبتون و نکته اشاره کنم که تازه شد که تشاره نکرده باشه اونم بفرمی. دوستیابی با استفاده از رادیو پاس فرداه بله. مواد لازم یک عدد باخچه جلوی در خونه با مداری چمن و گل و درخت و یک آه. دستگاه موبایله به بهونه زدن چمن میای اینجوری در خونه؟ خب رادیو رو پلی میکنیم رو اسپیکر خب ایرانی رادش اگه با شما هم فاز و هم سلیقه باشه خودش میاد جلو و سلام علیکم میگام دوست میشین قربانت برم بمیم قربونت برم منم خیلی خوبه ولی خب بیشتر فکر کنم برای ساکنین ای ای ای ای ای های خارج از کشور یعنی ساکنین شهرهای خصوصا شهرهایی که پر از ایرانیه مثلا شهرهای مثل لس آنجلس و اینا مثلا جواب بده به حال امیدواریم موفق بشین دیگه کسی اگه ساکن شهر زیبای بریزبین هست اگر جلی خونه ای رد شدین دیدین یه جوونی داره چمنه رو آب میده رادیو دیو پس را گذاشته بریم باش دوست اسمش بابک بود؟ بابک؟ فکر کنن آره پسر خوبیه خلاصه بریم باش دوست شین آفلی. بریم ببینیم آقا دشتی کجا کار میکنه خبری ازش نیست ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیموعتلی ماشین مشتی ممدلی نه داره نه سندلی آبتی بگم این تیم مسکو زدینن مد شده همه هم <تصفح> اگه خیلی مادم هم نزنیم زونه چیه آنفلانزا زونه من آره ما یه چیزایی شنیدیم ولی خب ما آخره یه تی هم وسط این ترکوتولای خیابون ترخیدیم یه تی خودمون یه پام آنفلانزا من فلانزاییم نیابدی زونه با دیگه آخر بله ولی آنفلانزا که آدم نمی کشه با شوخی بکنی شما دیگه زونه من چند نفر مرد چهلو نفر یو برفرض پس جدی مدی اینآتی والله این دور زمانه دیگه مریضی پریزیاشم به آدم نمیبره دیگه واله قدیم آدم مریض میشد یه دو روز میخوابید سر و كلهشو میبست مادر بچههام یا آشیش سوپ میچیزیم میپخت به خیکمون به هرحال میبست و خوب میشدیم تمام میشد میرفت پیكارش دیگه اوالا یعنیچی یعنی آدم با این مریضیو بمیره افتاره با زشت ما تی هر موقع میخواستیم بره فکر و فقا بگیم چیزیمون نیست میگفتیم چی آنفالانزا داریم <تصفيق> الان دیگه تیم باس بزنن علت فوت آنفلانزا زونم چیه خوکی مگه خوکم آنفلانزا میگیره آخه مرغی بود قبلا که زلن خالف خوک با اون حیبتش آنفلانزا میگیره آخه شما بس که تو این مایه تیز تیزه دیگه آن فلانزم آن دیگه ای الان زیمه آدمت گرم خب بگو دیگه و اول دیگه خواهره من خب بگو چی کار کنیم خان دکتوری آن فلانزای تیزه کفتیه خوکیه, اونو نگیریم نه رعایت رو که میکنیم یعنی ما صبح از خب پا میشیم. تی میریم گلاب بروتون دستشویی بردم دستورمونو میشوریم شبم هم که میریم خونتی بازم میریم دشوی بازم دستوالمونو میشوریم دیگه رایت بهداشت میکنیم خیاله تخت یعنی چمه؟ یعنی خب چی کنیم یه عمره این بودیم نگاه آبتی بیشتر از این تی نگه بلد نیستیم آه یعنی باید جون من یعنی بیشتر باید دستامونو بشوریم مابطابو. همین دیگه باشه دیگه اگه شما میگی میشوریم دیگه خیاله نیست یعنی همین دست شدستن اینا ردیفه دیگه کار ردیف میکنه عزب باشه دیگه خیلی خوب این چی دی؟ آب دیگه من ماسک آب بزنم الان یعنی دست شما نکنه خیلی دوست داشتم یه بار تو زندگی ماسک بزنم آن. خیلی با کلاس ازا بزن بزنمش اینو، ماسکه رو آه ستون عبزی، بیاد به تو آینه ببینم خدا ایوان، با. خیلی بار کلاس شدم بیام عبزین، تصما که رو دماغ میزنن چیونه واسه انفلامزا نیست؟ نه؟ ربطی ندارد آه شریف، همین ماسکه روازیم ما فقط میگم رنگ دیگه شما این ماسکا دیگه یه نموره مردونه ترونه این صورتیه یه زن هستین <تصفح> هست دیگه این آه ای به چش من میرم میگیرم دارو خانه اینو هی ازیزه بدیه الان درش بیارم ای آبرو داریم ما اینو بکنم آره خیلی این چیزه حال کردم باشه ولی میرم یه دونه ساده شو میگیرم این گلداره تمت <تصفح> گرم همزی دیگه مسافره به درد بخور به شما نجرانگ استرام سرخ بشی شار کنی با قودورت منو دل کنی دوست دارم کنی رام نشی دللچ باز منو نار کنی و اما بریم سراغ ارادیو پس امروز شنبه 21 آزر 1394 میریم سراغ تبعیض قومی مذهبی یا همون تبعیض نجادی تحمیل محرومیت به خاطر محل تولد یا وقتی آدم ها به خاطر هیچ و پوچ از هم دور می شوند بیانی شما بگه 946 بدانید و آگاه باشید که همه انسان‌ها در برابر قانون و مقررات برابرند اما برخی برابرترند پس اگر با وجود سواد و سابقه کار و تخصص کافی برای استخدام در یک سازمان و اداره فاقد صلاحیت تشخیص داده شدید و یا برای سفر به کشورهای دیگر به خاطر ایرانی بودنتان زیر و روی شما را سه برابر بیشتر از دیگران جستجو کردند بدانید همانا که از مورد تبعیز قرار گرفتندگان نید امزاو جمعی از همیشه مورد تبعیض قرار گرفته ها و با وجود تحصیلات بالا توی همه گذینش شغلی رد شده ها و میخواستن برن خارج ولی خارجم بهشون ویزا نداده ها و الان ما پرایت تو آجانس مسافر کشی کرده های رادیو پس پس دا دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا بریم سر کارا روز تا آخر تحفیلیه بیا بیا بیا بیا یه لحظه دندون رو کمرتون بذارین اجزه بدین من اینو بگم آقا این هفته خانم آقا این هفته از تجربیات تب ایزامیزی بگین که سرتون اومده این سوال این هفته مونه یعنی مثلا تو خونه تعتقاری نبودین و مثلا چه میدونم باتون مثل کوزت بینوایان رفتار میشده یا چون مثلا بابا ننه پولدار نداشتین تو مدرسه سوگولی معلم و نازم نبودین یا چه میدونم برای پیدا کردن دوست دختر یا دوست پسر حسابی به زحمت افتادین چون پرشون مازراتی زیر پاتون نبوده یا مثلا چه میدونم شده تو خارج از ایران وقتی فهمیدن ایرانی هستین باتون یه جوری دیگه برخورد کرده باشن؟ این هفته میخوایم سرتون رو بذارین ما خودتون رو این چیزی رو یعنی میخوام بگم تو دلتون نگه ندارین همه این رفتارهای تبعیز آمیزی که تو زندگی بهتون تحمیل شده رو بریزین بیرون ای خواستین دیگه نمه عشقی هم بریزین دیگه جلو خودتون نگیرین ما درکتون میکنیم این هفته از تجربیات تبعیز آمیزی بگین که سرتون اومده الان مثلا شادی تو فیسبوک گفته شادی گفته تبعیض زیاده اولش اینکه چرا من باید در ایران به دنیا بیام ولی فلان خانم در کشورهای پیشرفته به دنیا بیان خب البته این دیگه اسمش تبعیض نیست این جبر جغرافیایی الان یه نفرم داره میگه چرا من باید مثلا توی چه میدونم سومالی دنیا بیام بعد مثلا شادی توی ایران دنیا بیاد همیشه به اون سومالیایی فکر کنی تحمل شرایط برات راحت‌تر میشه شادی جان بعد مهرنوش گفته که بازم توی فیسبوک من تو ایران که نمی بینم همه دقیقا بر اساس لیاقت و تخصصشون سر کار خودشون هستن در آمد کشور هم عادلانه بین مردم تقسیم میشه بین آقازاده ها و مردم عادی هم هیچ تفاوتی نیست مهنوش نه جدی بود یا شوخی شوخی ها شوخی میکنه بچا مهنوش داره شوخی میکنه داره عدای دیبی رو در میاره کنم دیبی بود همه چی برعکس میگفت کلا آره اینجوری بوده احتمالاً و اما توی اینستاگرام اه اه برایان برا برایانز فیور گفته تبعیض یعنی اینکه همه همه جور تفریح دارن کنار زنشون اون وقت من رادیو پاسوردمم نمیتونم گوش بدم همش زنم تو جم تیویه منم تو اینستا والا خب شما بعد با خانمت صحبت کنی بگی مثلا چهارشنبه پنجشنبه جمعه تلویزیون مال اون باشه یک شنبه جمعه دو شنبه من مثلا مال شما باشه سهشنبه یک در کنین دیگه اینجوری نمیشه که آخه کلن پس ورد و گوش ندین چون خانم جم میبینن شما تو اینستا این که این تبعیزه در حق ما اشتباه میگیم بگو اشتباه میگیم تبعیز فرشید قربونت برم تو دیگه چرا مگه چقدر وقت از ایران رفتی ببین قربونت برم اینجا موارد فقط تو خارج هست تو ایرانی نیست فراموش نکن ما توی کشوری زندگی میکنیم که بر اساس برابری ساخته شده تو کشور ما همه آدم‌ها با هم برابرند فقط پولدارا رو محترم تر تو این برابری که همه آدم‌ها با هم برابرند نمیاد برابرن. بدبخت ترند سفیدا برترند تبعیض هم در کار نیستا؟ در کل همه ها با هم برابرن فقط بعضی برابرترن. آفرین. الان متوجه شدم. ما هم چنین کشوری داریم. گرفتم الان قضیه رو. الان گرفتم کاملاً به تبریک میگم. خیلی ممنونم از تماست. شقایق 3D پس من چرا 3D نمیبینم شما رو شقایق؟ حالا به هر حال تو اینستاگرام گفته تبعیض برای من یعنی وقتی بهت بگن تو میتونی بری مهندس مهندسی سیم برق پشت تلویزیون بخونی ولی حق نداری بری هنر بخونی؟ مهندسی سیم برق پشت تلویزیونم مگه داری ما شقایق جان همون کابل برق که میخوره به دو شاخه منظورته نمیدونم چی ذوقی ادم میشنوه به هر حال ما همینجا از خانواده شقایق خانم میخوایم که اجازه بدن ایشون برن هنر بخونن ظاهرا دوست دارن که برن هنر بخونن ایشون ظاهرا ایش هیچ علاقه به سیم برق پشت تلویزیون نداره الله نمیدونم چرا اسم تو شقایق 3D و همین کارا رو میکنی خانواده میفتن میکنن به اشتباه میافتن فهم می کردن کلا به علاقه علاقه نداری دیگه مثلا به هنر یعنی عل... علاقه نداری نیمی دونم خوب به این هفته اگر خواستید که با ما در تماس باشید و تجربیاتت به ایزامیزی بگین که سرتون اومده با ایمیل پس فردا تماس بگیرین اسم از ما دو صف چهارصد بیست شش و دو صف و و در فیس بک گوگل پلاس سانکلاد اینستاگرام میتونید برامون کامنت بزارید ما رو فالو کنید و همینطور اپلیکیشن رادیو پسفردار رو میتونید در موبایل های آی یعنی در آیفون و آیپاد میتونید دانلود بکنید و صدای ما رو بشنوید دانلود کنید یا به صورت زنده صدای رادیو فردار رو در اونجا داشته باشید و هم صدای خودتون رو برای ما بفرستید و تلفن های پیامگین ما دوسف چار سد بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و و شست و و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرند دو صف چهارصد بست دوست بست I'm mean. خانم آقای اون دختر، خانم آقا پسرا، یکی از موضوعات تب ایزامیزی که الان مستوجه به فحش عمومی شده همین مواضعیه که جدیدن آقای ترامپ از علاقمندان ملتی میلیاردر پست ریاست جمهوری توی آمریکا گرفته به قول خانم کلینتون رقیب دموکراتیشون آقای ترامپ اولش که اومده بود حرفاش خنده دار بود و مردم باش تفریمی کردن الان دیگه ایشون جوری حرف میزنه که هم میخندونه هم میترسونه. همین چند روز پیش که ایشون گفت من اگر رئیس جمهور بشم اجازه ورود هیچ مسلمونی رو با آمریکا نمیدم یکی از همحزبیای جمهوریخواه خودش اعلام کرده که من حتی حاضرم یه کاری کنم رقیب دموکراتمون رئیس جمهور بشه اما آقای ترامپ نشه در این حدیانی حالا برای اینکه به عمق حرفه ایشون پی ببرین من یه مثال ایرانیشو بزنم مثلا تصور کنین یکی مثل آقای زاده بیاد بگه من حاضرم حتی خاتمی رئی جمهور بشه تا مثلا جلیلی نشه یعنید که تصور کنین جلیلی تا چقدر میتونه از ریل خارج شده باشه که چون این اتفاقی بیفته اما ماجره آقای ترامپ یا همون جلیلیشون نشون میده که پول داشتن زیاد گاهی وقتا باعث میشه آدم تبدیل بشه بگه موجودی که هنوز نیومده یا آلمه آدم ازش بترسن آدمی پر از تبعیز که بعضی حرفاشم هم دقیقا همون حرفاییه که موجوداتی مثل عبوبکر بغدادی و امسالو هم, هم رو هوا میزننشون که به طرف داراشون بگن آی دیدین گفتیم آمر... آمریکا میخواد ما مسلمان رو نابود کنه؟ دیدی؟ حالا شما برید بتر کنید خودتون رو وسط اینا تا ایشالا بعد از ترکیدن با پیغمبر تو بهش مثلا نار جوجی کباب بزنید. به همین دلیل هم از که ما آرزمون اینه که همین فرد و پسورده برادر ترامپ بیاد رسما اعلام کنه خان آقای اون این حرفای نجات پرستانه یا به قول خارجکی ها ریسیسی و پر از تبعیزی که من زدم همه شوخی بوده امیدواریم و... میخواستم ببینم تحملتون چقدر زیاده و واقعا هم کف کردم از صبر و بردباری شما بعدم حتی ایشون میتونن از رقابت های انتخاباتی به نظرم خدافزی کنن برن به بیزینس فوقولادهشون برسن مایهشونو درارن آره ما البته خب از اینکه ایشون احتمالاً بعدا میخوان بابت این پیشنهاد خیردمندانه ما از همون کنن ممنونیم متاسفانه میدونید به علت قوانین و مقررات از پذیرفتن هر گونه هدیه مالی از ایشون معذوریم الان هر چند میلیون دلاری که میخواد باشه باشه فرق نمی کنه دلنگرانی ما از آدمی است که میخواد به چشم خود شاهده پیروزی باشن حامران ملکموتی سلام چه خبر ها؟ سلام فرسی جان سلام همگیم چه خبر احوال؟ خوبی خوشی سلامتی همه چه خوبه؟ آره آره بد نیستش ولی ببین از اوضاع اکران فیلم بگم که همچنان بگیدو. خراب و تبعیض برای در اختیار داشتن سینمای بیشتر برای فیلم های نورچشمی ادامه داره برای همین فیلم. محمد مجید مجیدی و انیمیشن شاهزاد ایروم هنوز به کف فروش نرسیدی که کنار برن فعلا بار نمایش افتاده رو گردن گروه هنر و تجربه برای مثال میشه به فیلم بهمن ساخته مرتضا فرشباف اشاره کرد که از فردا نمایش رسمی شروع میشه بخشی از صدای فیلم با هم بشنبیم بعدا من بیشتر توضیح میدم سوزش یا در خادم وقتی سرما میخوره بیشتر گلوش سوزش داره تا گلو دو سه روزم از خونت نه یا بیرون بزر کمی حالت بهتر بشه یه مقداری دارو هم دادم با این دلارا برات بیارم فقط حواست باشه مضایمشون نشین یا داره بفرماین خواهش میکنم چایی تو یفت نکنه ماما بله به خدا کس را اگه نگه فردا میلاد بیاد این سگو ببره پرتش میکنم بیرون ای تانی هم ندارم حالا هی تو بخن ببینم صدای خانم فاطمه معتمد رو که فهم کنم دیگه همه شناختن در این فیلم بخشی از صدای فیلم بهمن ساخته مرتز و فرشباف رو شنیدیم داستان چیه بازیگرا دیگه غیر از خانم معتمد کی هستن کامراه آره بازیگری اصلی فیلم که هم ترکی گفتی فاطمه مطمی داریا و همسرشون آقای احمد حامد هستند و تو جشنواره سال گذشته نامزد گرفتن دوتا جایزه بوده فیلم برای بهترین بازیگر نقش اول و بهترین جلوه های ویژه اینم اضافه عجب. کنم که فیلم برای نمایش عمومیش 15 دقیقه کمتر از نمایش توی جشنواره است عجب یعنی اشتاد سانسور کرده؟ نه این دفعه اشوت سانسور نکرده خود سازنده فیلم نیاف فرش با اعلام کرده چون ریتم کار کند بوده خودش مونتاژ مجدد زده عجب خب ایام سوگواری و عزاداری هم که تموم شد از کنسرت ها چه خبر درست تموش شدم چرا بگیم شب آخرش اولین کنسرتی که پیش رو داریم روز دوشنبه 23 آذره که تو تالار وحدت برگزار میشه گروه ساعت هشت شب به نفع آموزش کودکان ایرانی و افغانستانی برنامه اجرا میکنن اینم بگم که این کنسرت زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام میشه بسیار ممنونم از عذت کامران عزیز باد خدافیزی میکنیم تا فردا و یک بخشی از یکی از کارهای 4408 به اتفاق میشنوید ای ای با سلام بی سیکسی شنبه شب راو شکایت عراق از ترکیه به شورای امنیت به خاطر ورود نیروهای ترکیه به خاک این کشور با مروری بر سرخط مهمترین خبرهاک ساعت گذشته آغاز می نماویم سازی چهار عروسک بومگذاری وارداتی توسط زایران کربلا در کاشمر و سؤال سوال کارشناسان با این مضمون که قدیما ملت زیارت می‌رفتند مهر و تسپیص اوقاتی می آوردن این ظاهیرها الان چرا عروسک به خودشون آوردن آخیر <متصفح> سخن سخان‌رانی دو چهره اصلاح طلب دیگر در کلرج و توصیه ناظران به فعالان اصلاح طلب که آقا اینجوری که به نظر میاد شما باید بجای انتخابات خودتونو برای شرکت تو لیگ برتر یغول دو آماده کنیم و ورود یک سامانه باریشی دیگر از روز یک شنبه به کشور و نظر فعالا نرسی بارش که آلا بالون بارون و برف میاد بعد هنوز اردی بهش تمام نشده محسودین میگن ای دو دیگه بیشتر زیر دوش بمونین فلات ایران میخوش که <متصفيق> مهمتری خبری ساعت گذشته را شامل میشدن اینک مشروع خبرها با چهچهی هم کابرم بلی بلی سلام سردار سلشکر محمد علی جفری فرمانده کل سپاه باستران انقلاب اسلامی گفتند، خدا می داند اگر ما یگانی از بسیجیان خود را که آماده جنگ هستند به جبهه مقاومت ازام کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد بر همین اساس که از کارشناسان ناسان تایید صحبت وی فرمانده استفاق به خبرنگار ما گفت بسیجیان ما به قدری تشنه یه تارومار کردن در جبه ها هستند که شیزه یه تشکاش تارومار را نمی گفتی تبلیل این مشاره کشه می از نوشتن آقا آه... میگو فن تلو. بگو سرنگون کردن دیگه به جای تلو ما. بهتره اینها شرکت شلو تابی. اول اصلاح میکنم. باسیجیان ما به قدری تشنه سرنگون کردن دشمنان در جبهاتند. <مارس> از سرف سپاه برای آنها محیدین فرضی جنگ در نظر گرفته شده و آنها برای خالی کردن انرژی تار و مارسازی به وقتید برای خالی کردن انرژی سرنگون سازی خود از صبح تا شب در حال جنگ با عکس و پوستر دشمنان در جپه های سمبولیک بوده هر روز آنها را چنان تار و مار ببخشید سرنگون میکنند که سرانه مصرف پوستر دشمنان در کشور به میزان چشمگیری بالا رفته بالاتر هم خواهد رفت. ایان یعنی مشروع اخبار گویا ای وله ابشن در خدمت کاشاو سمنیتی انتظامی اطلاعاتی ترافیکاتی شلیکاتی برنامه. برنامه جناب آقای جاب سرحنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار جاب سرحنگ باش جواب گلوله سر... رو گولولار دیگه چی شده حالی عمومیش چطوره آه, آه. آه خب خدا هاروشوک علی بی بی نه. سرنگ تشکر از اینکه بنده و شنوندگان عزیز رو هویج پخش کردید بعد از شما خواهش میکنم که بفرمایید سرنگ او ای سلام یه ذره گوشی گوشی بله بله ببخشید ماردی فوری بود من باز پیگیری میکردم منم سلام عرض میکنم وعده خدمتیشو ما هستم الو بعدم تماس میگیرم دیگه فعلا خدا آفیس خدا ای سلام جان نید خبرها شنیدیم که بله. در یکی از ایستگاه های متروی پایتخت تیراندازی شده بفرمایید که چی شده که اینجوری شده و بله بله این... اتفاقا بنده در حال پیگیری همین مسئله بودم مسئله این است که یکی از همکارانی بنده داشت سلاحشو جابجا جا می کردند که متاسفانه یه گلوله از سلاح در میرندا می خورد به پای از آبران عزیز سلا باشید شما و واقعا میگم این نیروهای شما کار کردن با اسلحه ولدن دستی اصلا. شما ما درد نکنه آقا جون نیروهای ما تا بنیدن دندان مسلح ها آماده نبردن این ها چی چیه ساجیزی علی وای می میبینم خب سرانگی چه طرحی اندیشیده اید برای مراقبت از مردم در برابر نیروهای خودتون یعنی چی چی آقا چی چی میگو نیروهای ما در خدمت مردم هستن ولی ولی کاملا مشخص دو روز رفتن تو ایستگاه بله. مترو هیچی نگرفتن که هیچ زدن پای خودی نکار لاکار رای. ببینید آقا این تصادف بوده است این چه حرفایی از شما تو رسانه م. مطرم تصادف بوده است سرهنگ علم. این معمولی که زده توی پای مند خدا اسمش چی بوده من میخوام بدونم نیمیشد عزیز من نمیتونم اسمشونو رو تو رسانه بگم که این اول اه. اسمش قندی نمیده اه. سرهنگ شما از کجا قن... میدونه یعنی چی چی سرهنگ از قدیم گفتن اه، اه، اه، اه، هر جا سخن از دست و پاچ و لفتی بازیست نام قندی درانجا میدرخشد یعنی حقتون ها سرهنگ حقتونه آنهای یعنی... عزیز این چه حرفایی از ش حالا ما گروبان غندی رو باش بله. بر خورد میکنیم اصلا ولی این حرفای که شما میزنیدم شایسته نیست عزیزم علی دیگه هر چی و کج و کوله است برمیداریم میبریم میکنی گوربان بعد آزدوب... نیروها که کشته و حرفه‌ای میمونن پشت خ عزیز... این قندی با دشمن فرضی هم درگیر بشه به اسارت در میاد سر آقا... کو... دی... چی میگی کدوم نیرو چی میگی شما کدوم نیروی کارکوش رو نگرفتیم ما آقا جون همین دیگه سرنگ چشمی خودی تو برو به حقیقت بستی در حالی که حقیقت به این خوشتی پی به این بامزده ای به این جذبی خوشتده ای به این کارکشتی نشستی جلو من نمیفه آقا کیو میگی شما خودت تا میگی آره دیگه دوباره شما ظاهرا حالت خواب نیست من یک هم که شده دو... توانایی خودم رو به بت... بله ثابت کنم بذم من اینه چی کار میکنی آقا آقا ای تمومه این مصاحبه و این آمن برم, برم بیمارستان. ها. یا سرهنگ یا خدا این چی چیست شما این مسلسلی پوک پیش رفت از کجا آورده این غیر قانونیست آقا جود بله بله سرهنگ بله بنده اکبر خالزن هستم نبرگ چگندر این جیگر تلا که میبینی ام چارنه آمریکایی نیمه اتوماتیک و سی تا فشنگ من پناه بگیرم آقا شما با داشتن این اصلای داری امریتی بلی رو مختوش جرم دارد. من پناه میگیرم آقا جو ببین آجوش. نه ترس دار نه بگیره ترس سرهنگ حاجید لب پنجره نشون بدم بایی شید اگه نه ترس دارم از سرهنگ بمرکز آه... از بند گروگان گرفته شدم توسطی فردی با مسلسلی فوق پیش رفته با سرحن سرحن گروگان چیه چی میگیه اگه به خودت بل... مسلط باشی و کار ای نکنی سر هیچ کس بلایی ن حالا قدرت تیراندازی رو ببین و لذت ببر. بله باز هر چی شما بگی درسته شما آروم باش خدی تو کانتا رو اون فقط پرنده ها رو میبینی اون دور دارن پرواز بله میکنن. بله, بله بله یه چیزایی میبینم اون شما آروم باشون اون دارن میرن کاری ما شما ندارن آقا جون. نه هیچ وقت به خونه نمی رسن. بله سرن. چون من از همینجا تک تکشون رو هدف قرار میدم سرع. ببین قدرت تیراندازی رو. آقا نه. ناکن نکن از دیاز اینکن درصد راست نکن واسهخوا سرنگ دیدی یا... اونی که الان زدم پدر خانواده بوده و دیدن داشت که مادر خانواده من... و جوجه های کوچکش خیانت میکرد به سای اعل ول سگیر مرکز سری تربیاتگر روگیر حالش خوشنش امکان دارد یا کار می کند من ما پرنده مادر دقت پر کرد البته اونم فی بر... زندگی خیلی وفادار فادار نبوده سرهنگ نوکشو می زنم و انقدر دیگه جی چیزی از این نظره ببین. آقای عزیز، اونا بله شما نباز تیر آقا، ای با... ایک هلی میکنی از مرکز، از هست دو تیر رو برداشتی ایران برای اینکه شما تبعیض های قومیتی رو با دلوجون احساس کنین اصلا نیازی نیست زحمت زیادی بکشین یه تحقیق ساده بکنین ببینین مثلا از هموطنان کرد یا بلوچ یا ترکمن ما چند نفرشون تا حالا تونستن به رده های بالای مدیریتی تو کشور برسن بجز چند تا استثناء قدیمی تقریبا میشه گفت چی؟ بعد تازه اگه این قومیت ها تو ایران به درجاتی هم رسیده باشن نمیان اعلام عمومی کنن که مال کجان یا مثلا نمیان لباس محلی بپوشن برن جلسه حیات دولت یا مجلس که همه بفهمن که بله یا مثلا برید ببینید ما تا حالا اصلا وزیر سنی داشتیم نه آدم لایق و شایسته وزارت بین این قومیت و عقلیت ها زیاد داشتیم و داریم ها مسئله نیست مسئله اینه که قوانین نانوشتهی وجود دارن که باعث میشه یه نفر که برای مدیریتهای رد بالا معرفی میشه به مراجع زی ربط عزیزان خیلی سری قومیت یا اقلیت بودنش رو تبدیل کنن به یک دلیل خنددار عدم احراز شرایط و ایشون رو دک کنن به رد کارش حال تازه اینا که گفتیم در مورد کسایی که به خاطر قومیتشون و یا اقلیت بودنشون تحت تعقیب قرار نمیگیرن و یعنیم اصلا به های عزیز یا دراویش که هیچی هایی حکومت و در مورد حق نفس کشیدنشون هم تبعیز میشه یکی از بدترین تبعیز برتری دادن لحجه تهرانی یا همون تهرونی به باقی لحجه طرف با لحجه به اونی که سعی میکنه لحجه مثلا لوریشو رو مخفی کنه میگه بچه کجای لحجه داری؟ یا کلمایی که تو گویشای های مختلف هست از بس چپ چپ بهشون نگاه کردن میون فارسی رسمی حرف زدن گم شدن حالا که اینوار من مهم باشه ها من که خودم نافه ترونم ولی این هانیه دوستم اصری زنگ زده بود اور زد که خسته شده از بس بهش گفتن لهجه داری گفتم خب بگو بله دارم خوبشم دارم گفت نگران نباش اینو میگم ولی قصهم میخورم دیگه یه وقتایی یعنی چی میشد من جای اینکه تو روستای خودمون اطراف بجنورد به دنیا بیام تو تهران به دنیا میمادم تام جبر جغرافیاست. دیگه محل تولد آدم که دست خودش نیست. برای همینه که هیشکی حق نداره پوز محل تولدش به اون یکی بده. گفت حالا که یه سری دارن این کارو میکنن. راستی شرمین تو کلاس فن بیان خوب سراغ داری؟ گفتم وا میخوایی بری بازیگر شی؟ گفت نه، میخوام تمرین کنم بدون لهجه صحبت کنم. چی بگم والله؟ فریبرز غریب سلام فریبرز سامی بابا امروز کلا حواسش به پاریس و قورکشی یورو 2016 چه خبر مراسم تموم شد قورکشی تموم شد سلام سلام به همگی آره خب سامی هم حق داره دیگه تینش اونجا میزبان چند دقیقه پیش فرشی تموم شد جشنواره فوتبال اروپا است دومین رویداد مهم فوتبال بعد از جام جهانی یورو 2016 از 20 خورداد تا 19 تیر سال آینده در ده تا شررب فرانسه انجام میشه و بازی اعتدایم دقیقه پیش معلوم شد فرانسه تیم استامید با رومانی بازی میکنه مهمترین هااشاش هم فرشید امشب قیبت میشل پلاتینی ضعیف تایه فوتبال اروپا بود که از سوی کمیته اخلاق فیفا فعلا محرومه و اینکه به خاطر تهدید داعش زیر کنترل شدید امنیتی انجام شد مراسم امشب بازرسی سفت و سخت حالا تا اون موقع این داش باز خودش جامع جهانی برگزار نکنه خوبه. میگم اه. فری بارس تو خبرها اومده بود به تیمایی که به یورو دوزار و کردن جایزه خوبی هم میدن انگاره جایزه خوب میدن جایزه کل تیما 301 و یک میلیون یورو اینجوری که خبر اومده حالا یک میلیون یورو یوروشو بدن به ما دیگه یک میلیونش اضافه <تصفيق> از فکر یه <تصفيق> <تصفيق> میگیره <ما ایم> مل... <تصفيق> چقدر میگیره 27 میلیون تا 27 میلیون یورو تیم قهرمان میگیره بعد خیر می دونستی میرفتیم با تیم رادیو پاس تو مقدماتی یورو 2016 شرکت میکردیم ها حیف آره البته سعود کار سختی بود ولی به زحمتیش میارزه انشالله دوره بعد ان خودت حواست باشه دیگه فریدورس از ورزش خودمون چه خبر والا محمد مایلی‌کن حروزه نرسیده به تهران از ترکیه دوباره از کیروش انتقاد کرد و گفته کیروش ما یه میلیون تومن حقوق میگیره همش تو مرخصیه و اصلا گفته کهروش مربی دروازبان هست تفاشیدن یه نظر جالب کرده گفته قول داده البته جلوی خبرنگارا که نظر کهروش و مایلیکو هن تو قطر محل مسابقات انتخابی المپیک که با همونجا هستن درگیر بشن بسیار ممنون هم ازد فری برز غریب تا فردا بکنه. خدا خدافزه میکنه تا فردا خدا میگه مردم انقلابوی و ستم گررستیز ایران بدین و سیگل به اطلاق می رسابند رئیس جمهور کشور دوست و انقلابی گامبیان نوع حکومت این کشور را به جمهوری اسلامی تغییر داده و اکنون بر ما شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که با آغوش باز برادر کوچکتر خود یعنی جمهوری اسلامی گامبیا را در آغوش گرفته سمرات و فواید بیشمار جمهوری اسلامی بودن را به آنان یاداوری کنیم به همین مناسبت ما همه باورمندان و نظام دوستان کشور در گامبیا تهران مستقر در برابر سفارت گامبیا جمع می‌شویم و با شعارهای گامبیا و گامبیا با ما کمرابیا، رابیا گامبیا, و گامبیا و در چه فکری ایران پر از خمینیه و گامبیای قهرمان بیا پیش ما بهمان از این عضو جدید خامهوابده بزرگ جمهوری اسلامی ایران استقمال به عمل می‌آوریم ستاب در آغوش پذیری گامبیایی‌ها به مقیم مرکز مستقر در گامبیا یی تهران شنیدین میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدند گردن مسگری حالا حکایت ماست چرا؟ توی 20 سال گذشته توی آمریکا کلی عملیات تروریستی و انتحاری انجام شده که تقریبا همه اونا رو کسانی با تابعیت کشورهای عربستان و پاکستان و مصر رو یک دو کشور دیگه انجام دادن این آخریه رو هم که خب یه زن و پاکستانی رفتن توی مرکز نگهداری معلولین و کلی آدمو به گلوله بستن که بعد معلوم شد وابسته به داعشی بودن که عربستان مهمترین حامیشونه حالا این وسط کنگره آمریکا یه دفعه به فکر افتاده که باید جلوی این اتفاقو بگیره مونتا به جن که رفت آمد عربستان و پاکستانو به خاک آمریکا محدود کنه اومده توی کنگره طرحی رو تصفیب کرده برای محدود کردن بیشتر ایرانی ها برای ورود به خاک آمریکا فکر کن خلاصه که تو کنگره ثابت کردن که میشه گاهی شقای خانم و به عقد آقای گودرزی در آورد به خصوص وقتی که تروریستا تابعیت کشوری داشته باشند که اون کشور متحد آمریکا محسوب میشه خب این تبعیز نی... اگه نیست آین چیه اسمش؟ یعنی دیگه اصلاً کار از تبعیض هم گذشته چون لااقل توی خیلی از تبعیضا یه بهانه‌ای در ابتدا هست که بعد همون مثلا میشه دستاویزی برای رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه گروه و دسته‌ای. تو این داستان آقا همون بهانه ام هم نیست. خلاصه این قضیه هنوز بر ما جان نیافتاده منتظر می‌مونیم یک از کنگره بیاد بالاخره توضیح بده چه جوری از شیرین‌کاری‌های اطباء پاکستان و عربستان تو خاک آمریکا به این نژاد رسیدن که باید ورود ایرانیا به آمریکا رو محدود کنند. حالا هر وقت اعلام کردن ما همینجا خدمتتون اعلام می‌کنم. فرصتمون تموم شد وقتی برف میاد وقتی بارون میاد وقتی هوا ابریه گاهی دلت میگیره خصوصا تو این آخرین روزای سرد پاییزی که بیشتر به زمستون شبیه تا پاییز هر چند ابریو عبریه گرفته میتونه تو گاهی دگرگون کنه اما وقتی بخوای وقتی اونی که دوستش داری پیشت باشه وقتی دنیات آروم باشه وقتی بخوای حالت خوب باشه میتونی از ابرو برف و بارونم لذت شبت خوش روزت خوش حالت خوش روز I know better, but I'm more